همونطور که خدمت شما شنوندگان گرامی به آگاهی شما رسوندم بعد از ظهر امروز ساعتی کنیم تا سه بعد از ظهر در مرکز شهر کوپناگ به مناسبت بیست و سالگرد قتل زندانیان سیاسی در ایران توسط جمهوری اسلامی تزالات استاده همونطور که گفتم در مرکز شهر کپنک امروز شنبه دوم سپتامبر از ساعت یک کیم بعد ظهر تا ساعت سه برگزار میشه. این کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانک میزبان این برنامه است و اطلاعی هم صادر کرده که نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم همکنون آقای علی آزاد روی خط تلفن هست از شهر کپناک علی آزاد فعال سیاسی مقیم کپناک هستند و از برگزارکنندگان این تجمعه اعتراض همیست جناب آزاد سلام و صبح خیل میگم. سلام و صبح بخیر به شما و شما در رابطه با برنامه تظاهرات ایستاده، البته اعتراضامی نسبت به قتلام, سیاسی، قتلام زندانیان سیاسی در ایران. می‌خواستم اطلاعاتی در این رابطه برای شنوندگان گرامی در رابطه با تظاهرات امروز بدید. بله ما امروز بعد از ظهر هم که در درنامه گفتیم ساعت یک و نیمی بعد از ظهر در مرکز شهر کپنهاف در بادر گوگیده یک آسیون استاده اطرازی ری داریم که افشاگرانه هست با مثلا تعدادی از عکس و مدارک و چیزهایی که همراه خودمون داریم و اطلاعی به زبان انگلیسی و آلمانی و فارسی برای مثلا کسانی که علاقه منف هستند این مسائل اونا صحبت و گفتگویی خواهیم داشت و معمولا تجربه ما این هست که از اون در این رابطه سوال زیادی رو میکنن سآلات زیادی رو که ما سعی میکنیم که به از اونا در اونجایی که در طبانمون هست پاسه خوب باشیم در رابطه با خودمون روی برنامه باز هم به فکر کنم که به صدا چیز جدیدی نیست در واقع این 29 همین سال گرده اتنام زندانیان های سیاسی هستی که ما برگزار می کنیم و تا حدودی برای بخش وسیعی از نقش که به پسار سیاسی اجتماعی و بین مللی علا هم هستند هستن بارها بارها ما را توی و اینجور مراسم درد که از شهر یا در مراسم های که برگزار کردیم نرحات کردند. در نتیجه برای طیف جدید نصد جدیدی که به از این واقع خبردار نیستن به صلاح جالب هست که ما این اطلاعات در صدق و به صورت گفتاری ها دارن و تعداد زیاد خوشبختان و فیلم و چیزای مستند هست که میتونیم در اختیار نسل جدید قرار بدیم که اونها اگر سلا بتونن به شکل مستقیم و به شکل روشن این قضیه رو گنبال بکن و از طرفی این به قول چیز که این 29 همین سالگرد در واقع ما افتحصاص دادیم به قطعه هزار و شست و هفت در کل برموط دهه شست هست که ما به عنوان دهه خونین یاد میکنیم همون که بسیاری از همسنی و سال ما و مردم که به مسائل سیاسی آگاهی دارن مطلع هستن در این دهه ده ها هزار زندانی سیاسی به خاطر اعتقاداتشون به خاطر فعالیت سیاسیشون به خاطر در از اینکه مخالفت با جمهوری اسلامی داشتن به جمهورهای اعدام شدن بسیاری از گروه ها ناشناخته مونده بسیاری از خانواده ها اخیج. اثر و سراخی از فرزندان خانشون ندارن و همچنان خواهان صلاح دابزسی این قضی هستند. این اکسینای ما بیان این خواسته هست که ما خواهان و یک دادگاه یا عادلانه هستیم که افقاد این جنایت روشن بکنه به اضافه رو که این عزیزان داشت دخش شدن رو بدن و اطلاعاتی رو در مورد چگونگی به قصد سندن این عزیزان رو به خانواده و, و جامعه بدن و خصوص برای جامعه برای اهمیت بیشتری داریم ما قصد گیری یا قصد برکا کردن جوخهای دیگهی برای این کار رو نداریم بلکه بیش از هر چیزی هدف اصلی ما این هست که جیشه چنین شکلی از مجازاتهای زیده انسانی جیشه چنین شکلی از برخورتهای زیده انسانی چنین چیزی که سبب میشه که بسنا ایسان ها به خاطر اعتماداتشون به خاطر تفکرشون به خاطر فعالیت سیاسیشون باید چنین مجازات هایی رو تحمل بکنند ریشه چنین جوشی رو در ایران و حتی اگر بشه در سراسر دنیا خوش بشه و ما هم بسیاری از کشورهای مدرن بتونیم آزادانه برای نسل آینده عرمه رو داشته باشیم از اینکه کسی نباییستی فنش بلند رو به خاطر فحادیت سیاسی کسی به خاطر اعتقادات سیاسی،, سیاسی یا مذهبی یا خانصفی یا هر گومه اعتقادی رو خودش رو سانسور بکنی یا مخفی بکنی یا اینکه به چنین مجازاتهایی به صلاح از بین دره این هست در این حدثم. اتفاقا گروهی از شهروندان ایرانی پنجاه شهروند ایرانی بنا به گفته نشریه دیلی بیست در گزارشی نوشته که اینا پنجاه شهروند که عضوی از خانوادهشون در ادامه جمعی دهه کشته شدن نامی به خانم آسمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در باره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشتند نظر شما چی راجب خانم آسمه جانگی چه کاری میتونه در رابطه با مسئله کشتار ادامه جمعی در انجام بده؟ و همینطور حکومت ایران سعی میکنه که مردم این جنایتی رو که مرتکب شده فراموش کنند اما نظر شما چی هست در این رابطه؟ من می که معدودیت هایی برای خانم جهانگیر هست که احتمال مثلا سفاره رفتن به ایران و یا اینکه مستقیما با خانواده در تماس باشه نداشته باشه این ها هست که خارج از جیته به اراده او یا خاص او هست اما به هر صورت من فکر می کنم که او برگان یکی از نمایندگان سازمان ملند امکانات وسیعی رو داره که این کیسی رو که بسته شده و در قبارش سکوت شده به خصوص جامعه جهانی در قبارش سکوت میکنه اون میتونه این رو باز بکنه اون اگر نمیتونه به ایران بره میتونه این چیزو باز بکنه که این همه انسان کشتی شدن کجاست؟ خانوادههاشنچن بایستي جوابگو باشی بایستي ادالت باشه امروز یک جمهوری اسلامی خودش به زبان خودش اعتراض میکنه و به این جنایت خوش افتخار میکنه حتی یکی از کسانی که در کمیسیون مرګ بوده به ون وان ریاست جمهوری خودش رو معرفی کرده در نتیجه چیزی نیست که پوشیده باشه خانوم جهانگیری یا هر کس یا از سازمانهای بینالمللی اگر امکان ندارن که این این رژیب اپسار بزنن دقیق این امکان دارد که اینو در عمومی در مجامع بین المرین مطقه بکنن هنوز کسانی از همین کسانی که خانمهایی که عنوان مادران یا خواهران یا بستگان مثلا جانبختگان نامه فرستادن یا مثلا خوان ادالت هستن حتی خوان هستن که بچه که تفر بوده از دیه خوانها برداشتن بردن نیست که؟ بو، کجا بایاسی در قبار این مسئله جواب من فکر میکنم که اونها امکانات نهابهای بین الملدی، سازمان های و بسیاری از استدار تشوارهای گروبهایی این امکان دارن. حد در اقل این مسئله به شکل این مطمئر بکنن. سالها که قبلهایی در مورد پس بود. مثلا در رابطه با عرامله در ترکیه صورت گرفته که شاید نزدیک بالای 80 سال هست ولی مطرح هست هر سال صحبت میکنه سال پیش آلمان رسمان به عنوان جنایت محکوم کرده از زورت که خواسته از بکنه از خانواده ها جا جان باخته گرد چرا در راوید اینم خود میتونم بگم. هم کم کشته شده اگر اون در ارتباط باید, باید نسلی مشخصی بوده که در رابطه با کل یک نسل انقلابی ایران رو صحبه دبون کردن و اینا رو نتیجه من فکر میکنم که این سکوت هنوز هم سکوت معنیداری که سال شهست یا به هی شهست چی به در به و همون هنوز سال هنوزه هن اینا باز نشده و. به شکل بازی روشانه یا به قول معروف سیاست بازانه به این مسئله برخورد می کند در غیر صورت هم جنایتی در صورت با سپاس خوب باشند شکی نیست که آیده این پرونده باز خواهد شد عباد این پرونده روشن خواهد شد واقعیت این هست که این عباد این پرونده اولاد هست به چیزی و حدود 5000 و حدودی اسم و آدرس و محل زندان و محل روز کرده از کسانی که این چیز شده روشتر بسیار اسم رو شده تعیید کردن ولی افعاد این وسیطان از این هست بخاطر این که بسیاری از خانواده حتی مایل نیستن که اسمشون در کتاب بیاد مایل نیستن که در رابطه بایی صحبت بکنن خاطر این که هنوز که همونده گروهان در دست رژیم هستن. ادامه اعتصاب غذا در زندان گوهردشت یا رجای شهر کرچ و همینطور ادامه اعتصاب غذای رضا شهابی که گفته میشه که وضعیت وضعیت وخیمی از رضا شهابی گذاره شده که نیمه چپ بدن او بیهست شده در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و سنفی در ایران نظر شما چی است که هنوز ادامه داره؟ ببینید شرایط زندان ایران به قول معروف در حد معمولیش و شرایط معمولیش و و ببنوان زندان های قرون بستایی ازش یاد میکنم حالا در چنین شرایطی در تابستان گرم با اون شرایط نامناسب زندان اعتصاب غذا به در واقع یک جور خودکشی هست یک جور تنها صلاحی هست که زدانی برای اینکه بتونه دادخواهی بکنه برای اینکه بتونه در غبال شرایط نامناسب و تغییر بده به اون تم میده ازا شعابید و تعداد دیگه از زندانیان سیاسی از دوزنامه نگاران و بلان نویسان و غیره بخص به اتصاب مزار زادن. علت کن رضا شهابی آسا مطالبات مشخصی رو داره متالبات سنفی هست به سالهای سالی که با این مسار درگیره و زندان بوده و این اولین بار نیست رضا شهابی دست به اعتصاب غذا چندین بار به شکل چار هفتهی پنج هفته یک طول کشیده که در زندان به صورت اعتصاب غذا بسر بود بیمارستان منتقل شد و قول و قرار داده هست که این مسلاب پشت زیده نظر بشه و به خاطر اینکه اساساً اساسا رضا شاوید جنبی رو مرتقب نشده او یه فعال کارگری هست و در رابطه با سنت خودش در رابطه با اتحادیه رسلا شرکت واحد فعالیت داشته و در نتیجه نباید اساسا کنشیدی حتی بر همون قوانین جمهوری اسلامی این نمی باید که رواهی زندان می شود تا چه که برای این سال سال هست که داره تاوان فعالیت شریفی خودش رو برداخت می ده. از این نظر خوب رضا شاقی با توجب اطلاعی که باز امنشتی نشانند سادر کرده با توجب این که باز نامه بوده که خانم جهانگیری در رابطه با و منتشر کرده باز همین مسئله رو مطرح کرده که وضعیتشون چی هست به اضافه همسر رضا آبی دیروز در یه که داده خبر رسال می کرده افتکه چیم در 25 و پنجمین روز اتصاب غذای رضا شعابی وضعیت جسمی او در خطر هست باسیم به یاد داشته باشیم که سال قبل همیشه در اتصاب مدت در صل شرکت وضعیت جسمی و سلامتی او شدیدت در خطر هست این سلام مجازات زندان اینا خلاصه نمیشه در دوره در زندان هستن بلکه در آخر قشون با یستی توانی مجازات پرداخت از نظر ذهنی از ذره بدنی، از نظر فیزیکی از نظر روحی، جوی اینها سال های سال با این صلسلام می مشکل با خودشون به دوش بکشن. خانوادهشون بایستیم مشکلات به دوش بکشن در نتیجه وضعیت رضا شعبی و دیگر زندانیان بسیار سلا خطرناک رسیده ما سعی میکنیم که امروز سلا در, در اقشینارمون اعلامیهی هم به همین مناسبت به زبان انگلیسی و دامارتی داریم و غروب هم در رابطه با این موضوع جلسه ای را هست که فعالین سیاسی و اجتماعی میان در کتاب میانده اونجا قرار هست که برای هفته آینده تدارکاتی رو برای مثلا حمایت اینها و تحت فشار قراردر جمهوری اسلامی تایی و تدارک که خیلی سپاسگذارم از شما آقای آزاد در کپناک من از شما و سایر همکاران شما و شنوندگان شما سپاسگزارم. امیدوارم که ویکند خوبی رو داشته باشید. و امیدوارم که روزی برسه که خبرهای خوب و خوشی رو به صدا از خوبنات داشته باشید. از جشن و شادیو به صدا از اینکه که زندانی سیاسی آزاز شده باشن. از اینکه که مردم به حقوق و رسیده باشن. خبرهای بهتر و خوبتری به شما داشته باشیم. خیلی ممنون جناب اینه